وابستگی مضاعف نوعی پیچیدگی بین پول و کارما وجود دارد که باید به آن اشاره شود کارمای شخصی شامل الگوهای تکراری است که می توانید آنها را تغییر دهید گسترش آگاهی انتخاب های شما را گسترش میدهد. انتخاب های گسترده مجال های تازه را به بررمغان میآورند و مجال های جدید اجازه می دهند راهحلها آشکار شوند این اصل مبنای واقعی استراتژی پولی بر اساس نحوه کرده واقعی آگاهی است اما صد کارمایی نیز وجود دارد که میخواهم آن را مطرح کنم و جمعی و اجتماعی است به این معنی که شما همراه با دیگران در آن متبدت شده اید پول پندار باطل قائی را ایجاد کرده است در دام این پندار باطل پول همان چیزی است که می خواهید اما از آن می ترسید زمانی که در دام پیروی از ترس خود گرفتار شده اید به دست آوردن سربت غیر ممکن است یک روانشناس این نوع تزاد درونی را یک وابستگی مزاعف می نامد شما به طور همزمان چیزی را می و از آن می ترسید. تا زمانی که از این وابستگی مزاعف فرار نکنید، نمی توانید خود را از پندار باطل پیرامون پول رها کنید. شکسپیر در دو بیتی پایانی غزل شست و یکی از آموزه های نخستین یوگا را بیان می کند. این شعر اعترافی غمنگیزه است. با توجه به آن رویدادی عادی آغاز می شود این که و قدرت هرچقدر هم که بزرگ باشند گذرا هستند. اغیانوز دائما ساحل را فرسوده می کند. بلندترین برچ ها ویران شده اند و در پایان غزل با چرخشی روانشناختی از عادی بودن می گریزد. آن زمان فرا می رسد و عشق مرا می گیرد. این پندار به سان مرگه است که نمیتواند انتخاب کند اما برای داشتن چیزی که می از کف بدهد سوگواری می کند. وابستگی مزاعف هرگز اینقدر واضح و دقیق بیان نشده است. خاسته ما را وادار می کند به دنبال هر چیزی بگردیم که به آن علاقه داریم. اما وقتی آن را به دست آوردیم بی اختیار ترس از دست دادن وجود دارد آیا وابستگی مزاعف جهانی است؟ شکسپیر چنین فکر می کرد و یوگانیز با آن موافق بود تفاوت این است که ما می به وابستگی مزاعف به عنوان یک پندار باطل تام بنگریم که کلید یافتن راه خروجی است مسیر کاملا مشخص است حوث پول نکنید و از آن نترسید. وقت، فکر و انرژی خود را صرف واقعیت کنید که همان جریان حوش خلاق است. این موضوع بسیار شفاف است. چه کسی واقعیت را به پندار باطل ترجیح نمی دهد؟ متاسفانه پاسخ همه ماست. تمرکز بر پول، جوانه تمرکز بر ما دیگرائی است، یکی از دیگری پیروی می کند با این حال پای گذاری زندگی بر روی دستیابی به مادیات بیشتر برای مسدود کردن مسیر آگاهی کافی است در بودیسم مسیر آگاهی شامل اندیشه راستین، سرعت راستین، کردار راستین و زندگی راستین است یوگا این گذینه ها را در آموزش خود در خصوص دارما لحاظ کرده است دارما ما دیگرانیست، موفقیت در گروه همسو شدن با ارزش های است. بدون آنها انباشت پول همانطور که به آن شهرت دارد، از معنویت دور می شود. امیدوارم این باور غلط را از خود بزدائید. آنچه در پیش است، چشمندازی از است که هر جنبه ای از زندگی، ذهن، جسم و جان را، در بار می گیراد.